گرچه حافظ در رنجش زد و پیمان بشه که هست او بین که به صلح هست در ما باز آمان سریع روشم بعد هم دیگرم خاطرش رو عزیز می داشتن می, می خیلی خوب برمان گرچه برمان گاهی هم خودش اونجا میگه که من در رنجش دادم من پیمان شکستم اینجا میکردم جنایتی کردم جنایت توی امیدم و عبدوش و می یار چیز نیستم برای اینکه اگرچه پری وشه، ولی فرشته خوز پری دیوانه می‌کنه آدم، می که اصلا پری دیده و پری زده یعنی دیوونه. و معتقد بودن، معتقدند در افثانه‌ها آمده است یعنی موجودات بسیار زیبایی هستند که البته بیشتر مهننه هست، پری، مرد، کمتر خبر داریم ازش دابطه هستن شوالیم ولی ما خبر زیاد نداریم عرب می‌میدونم ما خبر دارن هست پری زن هست بسیار میگن موضوعات بسیار زیبایی هستن که هر کسی شیفته میشه و دیوانه میشه نمیدونم اینار اپیمولوژی رو باید گشت ولی پریدیده و پریزده و نه هست و پریبند به معنی افسونگر و جنگی رو میگه پری باشه است ولی فرشته خوز اون فرشته اون گرفتاری های پری رو تولید نمیکنه کنه برای آدم. بخی خب دیگه کدومی که از عالم هم نیخونه؟ کسی خود بنده باید بخونه. <تصاف> نه آن اخ من چیو خونم؟ من بلد <تصاف> هم اینشالله. اینشالله هم nişanesi okum بخون okunaması yok Ansi akseri şiirini la derce dega چرده 59 şiir kanlı 13'e 13'e 13'e 13'e 13'e سیاه محبوش. چورده میگن چرده هم شنیدم من میگن من الان نمیتونم اون سیاه چرده که شیرینی آلم با اوست چشم میگون لب خندان دل خرم با اوست گرچه شیرین دهنان پادشهانان ولی اون سلیمان زمان است که خاتم با اوست روی خوب است و کمال پاکان دو آلم باید خال مشکین که بر اون آرز است سر اون دانه که شد رهزن آدم بله دلبرم ازم سفر کرد خدا را یارم چه کنم با دل مجدون که مرهم باید با این نقطه توان گفت که اون سنگین دل خوشت ما را بود دم ایسی مریم با مم. حافظ از معتقدان محتق... است گرامی دارش زن که بخشایش بس روح مکرم باید بر با. هستم احتمالا باز اشاره به شاه شجاید پادگرچه شیرین دهنان پادشان هست ولی آن سلی... او سلیمان زمان است خاتم با او است. هنرمندیش روی خوب است و کمال هنر و دامن پاک سفر داشته می رفته. این مسائل احتمال این احتمال البته فکر نکنی که حالا من یه دفعه بگو شدم یا نمیدونم جنون شاش و جاوازی پیده کردم اینجا نخیل ولی اینجور به نظر میاد که الا بعد که کسی از سیحچردگیش حرف حفظ داده، نزده نیمیه هر صورت کنم که دیگه چیزی نداری، بعد تو جز اون چیز من به شامس یه بله آه ای داره میره دیگه داره میره و این, این مضمون حافظ خیلی میاره یه چه دیگه میگه که چوز در بخت چه در وقت خود گویم که آن ایار شهراشون به تلخی کشت حافظ را و شکر در دهان داره این مسئله که کسی که باید زنده کننده باشه من کشت خیلی میاره ولی گله از پراه دیگه این, این چیز میر قصد نیه جانم از دیگه او یعنی آن برای چیزی چیز ما خاصی نداره کسی که آن کس سلیمان زمان است قاطم بود کدوم <میدراز> یا او سلیمان این این این خیلی از این جور چیزا هست هر که یه یه شعری بود شب جلسه پیش می که خانم تایری هم یادم بود خون میگه خمها ها همه در جوش و خروش هست وان می که در اونجاست حقیقت نه مجاز است این اگه بخونید وان می که در حقیقت نه مجاز هست مرهی ستاده هشتاد در این تقریب. چرا؟ این او گفت اون سلیمان زمان است که خاتم با او این حکم قط اگه بگید که او سلیمان زمان است که خاتم با او حکم شرطی یعنی نمیخواد تصریح بکنید چیست میگه اونی که خاتم سلیمان باشه خاتم هم راشه اون سلیمانو بگردیم مرازه کردیم و به نظر من این دقومی بهتر میاد برای اینکه ابهام بیشتر داره و شعر شما که شاعری میدونه که یه قسمتی از معنی شعر رو باید خاننده رو برش شریف کرده که خاننده لذت میدونه درسته اینه میفیشی زر توش باز همونه نتیجه هر دو یکیه چه بگی این اینه که خاتم هم داره یکم میگه اون کسی وسط اینهای که خاتم داره باز هم همونه دردی شده که و رو با روی دیگه با کمال هنر رو با دامن پاک دوتا هضافه است نیکش اون رو بخونیم زشت میشه است الان خیر از شه خب شها میخوا به خونی های غمپاری؟ دل سراپرده ای محبتی بفرماید روی خوب است و کمال هنر و دامن ست اضافه است یعنی ستا صفت به وقتی بخونی روی خوب است و کمال هنر زشت است یعنی موزیک شعر از دست میده حالا به فرض اینکه معنی آه. معنی قابل قبولی هم داشته باشه ولی روی خوب است و کمال هنر و دامن پاک لاجرم هممت پاک خانه دو آلم بخون دل سرافرده محبت او. محبت محبت او. محبت مثل مودت مثل مسرد مثل مرمت مرمتش که نمیگه مرمت یا مسردش که نمیگه مصرد اینم محبت دل سرافرده مودت دل سرافرده محبت اوست دیده آو آینداغ تلعت اوست من که سر در به دو من که سر در به دو کوه زیر بار نعمت او تو گو توبا و ما و قامت یا فکر هرکس کس به قدر حمت او این شعر بسیار شعر بلند است یعنی حریف رو طرف رو اگه تو میخوای خاید توبا رو به پسندی به پسند ما و باقامت یارم هر کسی فکرش به قدر حمدش یعنی من مال من درست داره این کاملا نظیر توبا درخت نیست در بهشت که میگوین که هیچ قصری، هیچ ای در بهشت نیست که شاخی از این درخت در اونجا نباشه و هیچ چیزی نیست که آدمیزاد بخواد و از این درخت توبا نتونه بگیر یه چیز این ترتیب، چیزیه و درخت قامت سیمین بعد مگر تو هست که هیچ سر ندیدم که این بدان ما میگه تو میخوای با با مشغول باشی باش ما با قامت یار مشغولیم فکر هر کس هم به قدر حمد چنین فکر من حمد چیزی زیاده حمد من بلندتره همون جوری که توی غزل دیگری که خوندیم مثل نه میرسیم بعد. میگه زین آتش نهفته که در دینه من خورشید خرشید چوله است که در آسمان گرفت اون نمونه آتش من به عنوان اینکه که قلب مؤمن به اصطلاح بین اسبعین من عصاب الرحمن که قبلا گفتم تو اونجا جایگاه خود خدا هست بنابراین خورشید یه نمونه از این آتش این آتش نمونه است، اینم هم همی کن تو توبا ما قامت یارفک تو اکتست به قدر حمدت بب گرمن آلود دامنم چه عجب همه عالم هواه اسمت او اسمت یعنی بیگناهی امام های احمه شیعه رو یعنی میگن محسوم اینجا در نسخه خانلری هست چه زیان و درستره گرمن آلود دامنم چه زیان یعنی به اسمت او هیچ من ارادت رو میورزم و مهره او رو میورزم اگه من آلوده دامنستم ضراری ضرری اون نمیرسه برای که او رو همه عالم گواه اسمانچه است چه زیان درسته، سهد درسته بزبینم در چند نسخه هست ببینید اینا چقدر، چقدر راحت دو و سه و چهار و پنج و شیش و هفت و هشت و نه و ده و یازد و دوازده و و و چهارده نسخه این قضا داره از این چهارده نسخه یک کو دو و سه و چهار پنج نسخهش هست چه عجب نه نسخه دیگرش هست چه زیان و صد درصد چه زیان زیبا زیباته اونتا ما در چنبر عادت خودمون گرفتاریم خودماندن در ذهن همون چه اما این کلاس اصلا برای همه که این مسائل تر میشیم بعد بخاریم من که باشم در آن هر من که باشم سوا پزدار من که باشم در آن پر. یعنی من هیچ نیست نیستم داره. بله بله که سبا فرده فرد داره باشم در آن فرم که سبا فرده بله, بله که باشم این جمعه جمله های استفهامی میارن ولی معنیش معنی انکاره یه شاگرد دیر میاد بیگن حالا وقت اومدنه حالا وقت اومدنه ظاهرش سواله ولی در حقیقت سوال چه میکنه برای اینکه من بخواد جواب این سوالی بگیره میگه نه خراقم بعد میخوام حتی چرا این وقت بعد من فقط میگه ببخشید نو خلاصش میکنه معلم میگه این وقت سر کلاس اومد دانش آموز میگه آب ببخشید اتوبوس ند اینو میگن استفهام انکاری یعنی جمله‌ای که مفهومش انکاره مفهومش منفیه ولی ظاهرش استفام من که باشم من, بس. من که باشم در آن حرم که سوا پرددار حریم حرمت روز بردی منظر چشم زن که این گوشه جای خلوت روز هر گل نو که چمن آراز ز سر رنگ و بوگ صحبت او دور مجنون گذشت و نوبت ما هر کسی پنج روزه نوبت او. روز. ملکت عاشقی و گنج طرف هرچه دارم زیمن حمت او منو دلگر پدا شبین چه با قرزن در میان سلامت او تفر ظاهر مبین که حافظ را سینه گنجینه محبت او محبت از هم که اینجا در نسخه اینه هست هرچه دارم زیمن دولت او پنج نسخه حمت نه نسخه دیگه دولت ملکت عاشقی و گنج طرف هرچه دارم، زیومن دولتی بازید. البته ملک و گنج با، با، با دولت بیشتر میخوره تا واهمه همه. خریم. اینجا این قرددار خریمه، وقتمون، سوا رو گفته، تصویرش... سوا اولاً خیلی آهسته رو میگه با سبا اختان و خیزان میروم تا توی دوست از رفیقان و و امت با این حال میگه سبایی که باز رونده است پرددار حریم حرمت اوست من که باشم باید سبایی که مشکول باید از وش رفتنه اون اینجا پرددار شد یه احبان شد هر جو بره حریم حرمت دیگاره سوا هر جو بره واسه حریم هستی که نه همینو دقیقاً می‌ره میره ولی هر جا میره حریم و حرمت گفتن که به وقتی نایب سلطنه حاکم تهمون بود صدر عبدالله بهانی یکی از نوکران نایب سلطنه تو معلی گفته بود که به این حضرت والا بگین پاش رو دوم ما برداریم در کار ما دخالت نکن نوکرم رد دود و گفته بود که من خدمت آستبدالله بودم میشون فرمزن که به با هزتی بالا بگیم شهر دوم رو گفت برو از قول من خدمت آقا بگو که فلانی سلام عرض کرد سلام رسون و از احوال خفصی که قربان اطاعت میشه ولی حضرت آقام لط بفرمیم حدود دومتون رو معلوم بفرمیم برای که هر ما بیاب میذاریم میگن دوم آقاست حدود دمتون معین کنین چشم حالا بند که باشم سباه پرددار حریم حرمتون سباه بله روانده هست همه آلم میگرده همه آلم حریم حرمتون سیده حالتون بعضی از این بیتا که خوندین در نصر خانداری نیست آوره در هواشی اینجا حالی خب مهم ارز کنم که دیگه که بخوانت بخواند. دوره از سرشو بکنیم قدرگی که اول هم نونده شد اصطا در این نقطه از قدرگی که من از اینو دارم سراسر جا شده. جا شده یعنی یه مصره رو اصلا به از یه بیت گرفتن به مصره دیگه بله، بله، گرفتن جد خیلی کنگیر، اونایی که از روی غزبینه همینوزنش معلوم نیست که با غزبینه اینن یکی باشه صد تا چاپ سعدیشی از روی نسخه محمد علی هستی. بروگی همهشون پر قلب بفرماؤم طبا اگر گذری افترد به کشور دونست یا نفعی از گیستوی معنبر دونست به جان او که به شکرانه جان بر افشانم اگر به سوی مناری پیام از بر دوست پیام باید باشه اگر به سوی مناری پیام از بر دوست اگر چنان که در آن هر رفتت نباشد بار بدین دیند دیده بیا و در دوست من گدا و تمنای وصل او هی کجا به چشم ببینم خیال منظره بینی من گدا و تمنای وصل او هی کجا به چش ببینم استفهام انکاری است هرگز به چشم نمی این کجا به چش ببینم خیال منظره دل سن عبریام دل سن بی لرزان هم. قد بالای سننوبرن سنوبر هم اسم درست کاج و هم اسم میووش میوه کاج مثل مخلوق بود قلبم هم همون شکل قلبو هم میگن اون عضوی که شکل سنوبری داره انتها سر تیزش پایینه سر پهنش بالاست دل سنوبری بعدم, بعدم قلب تناز میسید که دائمی تا موجود زنده است میزن بنابراین در سنوبری اول یعنی میوه کاش در دوپومی سنوبر یعنی خود دره دل سنوبری هم همچون بیت لرزان است بید هم شاخه هایی خیلی نازوی کرد که دائم اندک نسیم میدرزی س... هنوز هم میگن مثل بیت داشت میلزی الانم آنان میگهن تنهامثل بیت میلید دل سنووریی هم همچون بیت لزان هست حسبت قدر و بالا چون س نووری. اگر چه دوست به چیزی نمیخرد ما رو بهعای نفروشیم مولی از سر می چه باشه در شود از بند غم دلش آزار چ حد آافز خوشبانبلام رو چاکر. خلظه میکنیم که خوشحم میگه. خوش نوری تغاظه دارش هست و احتمالاً یکی از بزرگاه رو این هم دید خب افتسراج لقدر از رو بکش توب تالج عرض که یه جلسه شما از من طلب و به هر نحوی که دلتون بخواد میتونم این جلسه رو ترتیب یکی از انهایش این است که بنده در آخر هفته، این هفته خدمت شما هست ولی این مدینه برگید و اگر بتونید جمع شد، متاسمانه مبصرتون هم نیست آقای بود این هفته مشغول انجام وظیفه تدری بودن، نرزدن بود. پسرش و عشق برسی این هفته و در نتیجه نرسید این از که من نمیدونم یک کسی باید به نیابت ایشون یه دستی بالا بزنه اگه بتونین جلسه ای تشکیل بدین ازای جمعه شنبه یک شنبه و دو شنبه به دوستان بگین البته این اینکه یه نفت بگی که من اومدم اون پایده نداری باید یه مشت تلفن بازی و از این کارا داره یه ذره زحمت داره عرباته اگر قرار شد من هم به دوستان دوستانی که دمیده هستم هستم از جمله مثل آقای یاشار مثل خانم تاهیری اینا میگم یا دوستانی که اینجا هستن هم خبر داد. برد علی رزا شماره تلفن همه رو دارم اجازه بفرمایید که فکر کنم همین جنبه. آخر هفته برگیم برد جنبه. وقتی که اومد تو هر هفته کی بیاد فرضاً آخر هفته تموم شده من آخر هفته دیگه که نیستم که دو شنبه اون شنبه بیاد تا دوشنبه شما جمع کنیم ولی من هست یعنی جمعه شنبه یا شنبه دوشنبه دیگه دو باید باشه ببینیم کارمون تموشه ان شاء الله خیره شاید درست بشه اگر درست شد در خدمتتون اگر نه گفت کرد بماندیم زنده بردوزیم جایی که از تا شد مرد بمردیم، حضر ما بفصیل ای بس آرزو که خواهد شد خدا نکنه تعرف آقای غفوری الاخره که اسمت نه نه خب من خودم هیچ دلم نیمه خود بمیرم باید؟ باید؟ باید؟ نه این شوهر دارن شراب بزیشونن، نه خیلی آب انگور اول می‌جشونن که اون مرحل نجاستش نموم شه بعد اون وقت محمر بشتن این بر طبق مذهب ابو هنیفه پاک بله محمر بله؟ بله دیگه تخمیر می‌کنن، دیگه الکل میشه این و ابو هنیفه فتاوی عجیب و غریب داره از جمله اینکه سگ میدونه که عین نجاست. گربه مثلا پاکه، سک نجسی آنز خرس مثلا پاکه گربه پاکی نجسی این ها اگه سرشو ببرن زب کنن مردهش پاکه چون زب شده وقته ببای پاکه اون هم پوزشو میتونه بود تو گربه رو بکن. ولی سک زادن نجسه زبش هم حال دایه میکنه نمیشه که ابوهنیفه فتوا داد که اگه جلد سک و پوستی سک رو دباقی بکنن پاک میشه اینا فتوای قریب ابوه و یه روشی در این فراد که روش قیاس بهش میکنم میگه میکن. نه اینکه آب انگور تا جوش نجس میشه بل نه اینکه بعد اینکه دو سرسش بخار شد پاک میشه بل میگه خب به این نجس پاک شده حالا ما باید چراف این حکمی نداره این ریسورس ها شدن نداره و در کتاب راحت و سدور راوندهی اونجا که من دید کشف مهمو کردم کتاب <تص> راحت اون راونده بود برگه واسه سلطان سنجوهی سنجر منجر دید کسی از اینا این کتاب نوشته بعد بگید خب احلا حضرات بالاخره گاهی حوص می فرمند شرابی میل کنند دیگه بعدا خب این خلاف شرق گناه هم اصلا نمیشه برای اینکه هم رعایت جامعه به به عمل اومده باشه و هم احلا حضرات چیزی میل بفرمند نوشی جام کنند بعدا میگه اوچه هتو راستان کیاک اونی که اونی که اونی که کیاک که اونی که اونی که اونی که نادر رعایت قوانی شهر و درجه بیدن که چه میشون آمدن باید کارو میکردن و اگه خلافت شما با کیار راحت اول باید راونگور بجوشونید باید بزرین شراب شد چه شرابی که نبینی تو مگر خوابش را این تو راحتی تو راوندی هست و بنابه مذهب عبو آسر بسرو یه قطعه ای داره که من متاسفانه در این کلاس نمیتونم بخونم به تمام حل سنت ایراد کرده و میگه شافعی گفت که شطرنج مباه هست مدام کجمه بازی که جز راست نفرموده امام شطرنج به اجماع علماء اسلام شطرنگوزی هست حالت حالا امام اومد حلالش کرده بو به حضور گوید در واقع شراب که ز جوشیده بخورتان نبود بر تو حرام باقی ها نمیتونم باقشه بگن خودتون رجوع کنیم به دیوان ناسه خسرو و بعد این به پخته و شراب خام و شراب پخته و اگر این شراب خام است اگر هر پخته به هزار بار بهتر زه هزار پخته خام شهر باز ملاق داهد خام که این کارو می جام کند پخته گردد تو نظر بر می خام اندازد می خام نهیم آب انگور نجوش که شراب کند. و به هر حال این قوی کلک ها و این بازی ها هست و یکی دیگه از حتی اول این است که میگوید که خمر بر برآن حرام شد و خمر یعنی آب انگور فکر با هر شراب که از خورما و از مویز و از نمی‌دونم عسل و از نوب سازن که هم یا تقدیرش کنن که یه به چه یه چیزی بعد بعد اصلا از خطابای ابا همینید بیا باده که رنگین کنین جامه زرد که مست جامع کنیم، این بازیار در می‌رن همه ولی اینکه که هم کارش رو هم کله در خدا اگه اون خدای باشه که تو فکر می‌کنی که می‌زنیم تو سرت مرد که که این ابله‌هی تو رسول نمی‌فهمه خیال ظلفت و پختن و کار خامان است که زیر سلسله رفتن، طریق ایاری است ایار و جوانمرد و فتا و و و اسمای متعدد داره جماعتی بودن اینا تشکیلاتی داشتن تشکیلات جوانمردان حزب فتیان و بنده امیدوارم کتابی که در این زمین نوشتم و هنوز تمام نشده خداورم به توفیق بده که این کتاب تمام بکنم الان هم روز 11 همه کنفرانسی در واشنگتون در خانواده نعمت اللهی و دانشگاه جور در دانشگاه جورج واشنگتن برگزار می‌کنه اونجا قرارو می‌منده کتابی درباره این فوتو بعد بخونه به هر حال این جماعت عیاران کاراشون یکی حمایت از مظلوم بوده در مقابل ظالم هر خدمت به خلق بوده یکی از کارای این بوده است که بر بلایا و شکنجه ها و ها صبور باشه میگه که ابن جوزی که با دید انتقادی و اینها نگاه میکنه گه که یه ایاری بود در بغداد به نام ابن سفت یعنی منگاشی که زنها باش رو برو برد این ابن سفت نقیقی سکی بود ابن سفت شاعر بود و چیز بود این اسم این برو میگه اگه بود که رئیس داشت داشتماچی ها و جاهلا ها و که هم که و خیلی اسفره می داشت و گفتم احتا یه بار که ببینمش، اینو انقدر زده بودنش که آش و لاش شده بود که این ای نمیتونست بشن و یه ولی افتاده بود این بچه جاهلا و اینا هم دروهش بودن و یکی که دوم اینو تو باشقا میداشتن که شما چه می‌کردیم؟ بله آقا چنینن، بله نهان خیلان می‌کردن از این حرف‌ها یه دفعه این آقاست سر شد گفت باشیم بریم گوامشیم اول به این که بشینی بگیم تو همچی کردیم تو همچی خواهی توی یک پر بسانیم بگیم شما همچی که شما چه گوی خود می‌کنیم از کنم که بعد می‌گوید که احمد ابن نهنبل یکی از رؤسای چهار مذهب شیعه یک پدر همه احمد همه احمد گفت که خدا با من فیلان کس رو بیان باز به هم این که من خیلی از اون امام احمد همه از یه من از یک داشمشتی خلدار جاهل چه درسی میتونه میدیم؟ گفتم چطور؟ گفت که معمون این عقیده رو این ایدئولوژی رو منتشر کردون که قرآن مخلوقه زمان عیدیو داشتم که قرآن مخلوق نیست و کلام خداست و قدیم بعد گفته بود هر کسی رو که اعتقاد به و قرآن نداره در اینه ولایت فقیه امروز بعد ببینید چطور اذیتش کنین، دادجانش رو بزنین، چیکارشون، چیکارشون کنیم و ببینم گفته بودم که آقا شما بهتره که دست بزنین، چیز کنین، اذیت میکنینا. اون گفتن نه. میگه بالاخره منو با اینکه رئیس مذهب بودم اومدن ببرن. و تازیانه بزنم میگه همینجور که من می بردن و یه معمولی معمود یه معمول من که کسی این پشت پارتوی من از پشت قواهی آنه میکشی برکشتن میدم همین رو جاهله هست گفتم چیه گفتن من ابن چیشی هستم حالا دارم و میدارم این اسم کنم هفته بعد به تو میگم برای اینکه پوغلاده جالیه گفت من جالی. ابن فلانم گفتم خب با من چی گفت خواستم بگم که مثلا هزار و و و تا شلاغ به اسم من در این دفتر خلیفه سبت یعنی اینقدر تالا شلاغ به من زدن تمام این شلاغ ها رو که من خوردم به باطل خوردم یعنی دوزی کردودم، سزی کردودم، خلاف کردودم، عرق خوردود بودم، من من زدم من تمام این شلاغ ها رو به باطل خوردم و یک آخ نگفتم مواظر باش تو راه حق داری میری شلق بخوری و صدا نکنی دل کیال و دلکتو بخدن نه کار خامان که زید سلسل رفتن در یک عجیز لطیفه ایسنهانی عشق از آن که نام آن نه لبه لعل و خط زنگاییست یه کلمه داره حافظ در دیوانش که بارها آمده امیدوارم این تو پیدا کنی چند دفعه آمده به میگم اون کلمه آنه چیه اون چیه؟ شاهدان نیست که مویی و میانی دارد بنده یه آن باش آنی دارد این آن رو گفتن اون ل... اون لطف ذاتی و اون جاذبه ذاتی است که این کسی داره بلو اون که خیلی هم غیافهش و شکل و شمایلشون خیلی چشمگیر نباشه و این جزد میکنه در کسی دیگری هست که خیلی اداز جمال و ریخت و هیکل و غیافه رو بهتر از اون یکیه اما اون رو نبره اینا خیلی کسان هرست اولا این کلمه آن پیش از پاجه است. من تو یاد داشتم دارم یاد داشتم که اینجه نیست عنوان دیش هایی که یاد داشته نه آن پیش از پاجه یعنی کیا این آن رو به همین معنی اون لطیفه نهان این بیتا تعریف اون آن میگه لطیفه ایست نهانی که اشق از آن خیزد که نام آن نلد لحل و خط زنگاریست جمال شفت نه چشمست و روی و آرز و خط هزار نکته در این کاروارد بگرد این های مطلب توی یک از قصیده هاش هم بگیرد نتوان لاخ زد به آسانی هزار نکته در این کارواره بگرد تادامی به جز دهنی مایه هاست خوب میکن به حاکمی نتوان زد دم ما هزار سلطنت دلبری به دان نرسد که در دلی به هنر پیش را به این اون آن این لطیفه نهانی هم تعریف اون آن حالا من ببینم اینجا اون آن رو معنی اگر سوا کرده باشه ببینم چند دفع آمده که براتون بگنم اگر سوا کرده سوا کرده یه که آن به معنی ملاحت دو بار اومده اجتمع میکنه یکی دیگه لا اقل یادم هست نه یورده یکی از بوتان آن طلبروس شناسی ایوه چین کسی گفت که در علم نظر اینا بود. یکی دیگه همون که خوندیم شاهدان نیست که موییومیانی دارد بنده طلعت آن باشه آنی داره یکی دیگهش اینه الان برای میارم ارز کنم این یه <تصفح> دردم از یار از تو درمان نیز هم دل فدای او شد و جان نیز هم این قزلشه بعد میگه که این که میگویند این که میگویند آن خوشترزه هست آن از خوشترزه این که میگویند آن خوشترزه هست یار ما این دارد و آن نیست این یکی دیگش به نفت اینطور از همه بیتره فالاسه این آن اینه لطیفه نهانی که عشق از آن خیزد که نام آن نلب لحل و خط زنگاری است جمال شخص نشست پر چشم است و روی آرز و خط زار نقصه در این کاروار دلداری است مجردان و طریقت به نیم جب نخرند قبای اطلس آن کسی از هنر آریست روشن این چیز داری آستان تو مشکل تبان آری عروج ور خلک سروری به دشتباری است در این حال این که میگه به آستان تو دوشوار میشه رسید میگه رسید یعنی به آستانه تو عروج ور خلک سروریه سهر کرشمه چشمت در نسخه ای از کرشمه وصل کرشمه حسنت چهار نسخه کرشمه وصلش دو نسخه کرشمه چشمش، یه نسخه کرشمه چشمه، حسنت برهای، سهر کرشمه واسطه شو کرشمه چشمات به خواب میدیدم زهی مراتب خوابی که بهزه بیداره حتما خوابیسی از بیداری، بهتری است دلش به ناله، مایازه رو خط کن، حافظ باز اون یکی از اصول بزرگ تصف و که رستگاری جاوید در کمانزار خب از سیده گرامی بکنم میکرستم میکرستم زهی, زهی؟, زهی من الان چیز ندارم البته چیزش که معلوم که کرشمه دلبری و لغنگی و این حقا هست ولی اینه تعبیر لغوی شو در فرهنگ من متأسفانه مراجعه نکردم روم سیاه اینکه هزار تا از این گفتم که ما هیچ بلد نیستیم جز همین دوست کلمه که میجیم یکی اجزه اینکه ولد نیستیم همین کرشم بگو باید جانم با نه راج یعنی آسانسیون یارم این شمد ناشانه کیست جان ماسو به اسمی جانایی آلیا و من هست خوزر آخوی خوده یه لحل من راه رو هش ملفوظه نباید باید ظاهر کند. ده هه دولت, دولت صحبت آنشم اتعادت هر تو باز پسید خدا را که به پرقانه یکیست میدهد هر که شخصونی و معلوم نشد که دل نازوک او ماهل افسانه یکیست خودمان شاه بشه ماه خود درد جمین درد یک تای که بود تو هر یکیانه یکیست گفتماخ از دل دیوانه ی قاطز زیر هفت هم دزنم رو توی دارم دیگه من این بسیار دارید است کنم که یک نسخه داره تا در آغوش که میخست بد و همخانه در آغوش که میخست بد حافظی نیست حافظ خیلی پرد پوچه خیلی مبهم خیلی تمیز همونو میگه ولی نه با این صورت که بغل کی میخوابه؟ میگه که حالیا خانه برانداز دل و دین من هست تا در آغوش که میباشد و همونه تا در آغوش که میباشد و هم خانهی ولی این، ذرافت این تا اون سراحت کردگی زشتمون اون باده ی لعله لبش باده ی یادتونه باده ی لعلو گفتم می‌ی لعل از تو می‌ی عقیق از تو برای با عاده‌ی لعله‌لوش از لب من دور مباد از لب من دور مباد هش ملیله. بل هشف که گفتیم مفصل. با عاده‌ی لعله‌لوش که از لب من دور مباد راه روح که و راه یعنی راه یکی راه یکی از این چیزایی که خیلی مردم دوست داشتن بسیار لغت های زیاد هم برایش بکار برای که مورد علاقه شد زندگی عرب با زندگی شطر بستگی بخل آتی در حیقت، خانواده هایی هستم که زندگیشون وسیله یکی، تا شطر فقط اداره میشه از شیر شد پشت میشه همه شاید تا لغت در عربی برای شطر <تصفيق> شطور نر، شطور مادی، شطر یک سالی، شطور یک سالی نر، شطور یک سالی مادی، شطور ترمون، شطر تو شطر, شطر نه، چی چی؟ بنت لبون، بنت مخاز، نمیدونم این نشان بستگی پوقلاده اجتماعی این جماعت به اون حیوان که اقتصاد در حیرتی بشه همینجور هر چیزی دیگری دارد جامعی مورد علاقه بوده، معمولا از تعداد لقطای زیاد که برای هست ظاهر میشه. راه یکی از لغات شراف در قرم. مدام یکی دیگه یکی دیگه نویز یکی دیگه و احتمالاً بسیار شده دیگه هم هستی راه روح که و پیمان یکی کیست؟ دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو صحبت این دوستی رو دولت صحبت اضافه تشمید دولت صحبت آن شم سعادت پر تو باز پرسید خدا را را به منی برای خدا, خدا را یعنی برای خدا یعنی تو خدا برای خدا بپرسید که این دولت به پرمانه‌ی کیست اولا اونجا معشوق رو تشمی کرده به شم شم استهادت پر تو اینجا پروانه را آورده من این جباز. باز پرسید خدا که پروانه یکیست یعنی به اجازه دولت صحبت آن به سعادت پرتو باز پرسید خدا را که به پروانه یکیست بر همه نسخه ها هست میدهد هرکسش هست احران دکرخان لری یکی از دوسته ممره دید که به و به علم دانش ادبی خودش تحصیل کرد یکی این مورد می‌دهد و کنه می‌دمرد به قیسنگیز می‌دمرد هر کسش افسون می می‌دمرد هر کسش افسون می ما افسون دادن اصلا نداریم شما شمیدین تا حالا؟ افسون دادن سن دادن می از هر کس شخصونیه معلوم نشود که دل که او ماجله افسانه ای چیست یارب آن شاه واشه ماه رخ زهر جبین این دور صفات و پوشترم آوردن و بهش میگن یعنی تنسی به صفات تنسیق صفات یعنی همین آوردن صفت های پشت سرهم برای یکی میگه کس... که اه... نفس این وقت به آرام حفظ حوث صحرا بود با حریفی دو که دایم نتبان تنها تا که شیرات با سرگید چون دیبای منقشت دید. زن همه صورت زیبا که بران دیبا بود فارس در سایه اقبال عطاقت آرام در دوران عملی ما لیکن از ناله مرغان چمن قوقا شکرین پستدهانی به تنعام بگذارد من چه بودیم نتوان گفت که چون زیبا بود یعلم که شغایق نبدان بود و سمن نبدان بود و سنو در تا که و گوهر یک گوهر به معنیه، قایر جواهرات هرچه گوهر یکتایی هم یعنی گوهری که نزیر نداشت در یکتایی هم یعنی مرباردی که نزیر نداشت در یکتایی هم و گوهر یکتایی هست گفتم، آه از دل دیوانه حافظ بیتوزی رو لفت هم گفت دیوانه ی کیست؟ هلی ها از علما، آقای دو که عربا بیگه خونم ما هم این هفته بر را تو به چشم سالی ش هستند مردم دیله دست ز کرد می چ کرد چی خانه تو در این نقطه خوش داد دادن که بر ما گذری خواهی کرد مییت خیر مگرم که مبارک با روحه هندوقت کاغت حافظ خسته اصلا، اصلا نال اون رشته های باریک تو قلم دارم میگوارم که همه تون قلم داشتی بشین اون رشته قلم اینو نه خواسته نهه، منطقه که نازوکه است برای نوشتن بو کار و کلک، با. وقت کل کلک به معنیت مطلب که من قلم این قلمه این میگن قلم اون اون توی اون لایه قلم یه برش های دیگه مثل نخ کن نال و از ناله مثل نالی شده از, از از مضمون های خیلی خیلی قدیمی هزار ساله شعر فارسی که از خیلی قدیم بوده کاجم ها بود عرض کنم که مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او عکس خود دید گمان میگه این خال مشکین که روی چهره محشوق این خال نیستش که این روی محشوق مثل آینه است عکس مردم چشم نفتزه اونجا آخیان چون این خال مشکین مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او عکس خود دید جمان برد که مشکین خالص این افلی در این که هم با حالا باش میگونم این تصویره. عکس اونه که تو آینه میفته با بهش میگن عکس برای این که اگر رفقا فقط خودشون همیشه تو آینه دیدن یادشون باشه که اون قیافهی که دیگران میبینن اصلا اون نیست که خودشون تو آینه میبینن برای این که هر کسی تو آینه سمت چپش و سمت راست میبینه سمت سمت چپ. و چون دو طرف قرینه نیست به کلی یه شرکت دیگری مینه جز اون که مردم عکس چون چرخش راست میشه راست چپ ولی اون که عکاس میزون تذکیر منطقه گفتن حالا عرض عرض کنم که جوهر فرق اصطلاح فرنگیش اتم هست البته اتم نه به معنیه فیزیکه این برای که اطوم یعنی جزء لایت اجزا که قابل تقسیم دیگه نمیشون این تقسیم و فلاسفه قدیم به صورت ذهنی یعنی فقط تو خیالشون میگفتن اا این که دیگه چون میشه دو نصفش اون نصفش هم باز میشه دو خون نسل شماز میشه دونم شم. کنشه میگه خب اینو خیلال عوض میشه ادامه داد. بینی همینجوره این اصلاف دونست که باز دونست که باز دو با دو با دو عقل به چنین چیزی تصدیق نمیکنه. میگه نه خیلی بلاخره یه جایی میرسه که این نسمی که ما میکنیم انقدر ریزه که دیگه بیگه نمیشه دونم کنش کن اینو بهش میگه هم جزق لا یا که قابل تجزیه دیگه نیست یا فرنگی باشیم یعنی اتم و به اسطلاح خیلی علمای فلسفه میگن جوهر فرد جوهر فرد یعنی اتم یعنی جز الای فشن البته میگذاریم که حالا این رو به مناسبت اینکه فیزیسیان رسیدن در یه جایی که هنوز هنوز فکرشو کافتن ندرد به جایی که بگه ذرات رو نمیتونستن میکنن این نهزم چه اتم به اتباع اصطلاقی در یونان قدیم بوده و در یونان قدیم علمه هایی که بودن که اتمیست که دموکریتوس زیمگراتیست جز این طبقه بوده اتمیست بوده یعنی معتقد بود که جسم از ذرات لا تجزا تشکیب شده و روزگاری میرسه که جسم را نمیشه ذرات شد دیگه ذرات کچکتر این مصحب فلسفی باید اطومیس بوده و بوده و داری در علم جدید میدونید که درست پیله کردن به همون جا اون چیزی که نمیشه حالا ببینیم حالا میشه یا نمیشه و دارم شکست نمیشه در هر حافظ پا این مصحب بوده که بسیاری از فلاسفیز درش تردید میکردن بگوزن من این اغلب شیزا مثلا ارستو فرمایید، معتقد بوده که هر چیزی هر جسمی مرحکم از دو جزء ذهنیست یکی روش میگن صورت یکی روش میگن حیولا مثلا فندر رو بگیرم. شما رو بگیریم شما وجودتون یه مقداری در درجه عمل آبه باید کربون و اکسیژن و ایژوژن و اعزوت و کلسیوم و پوسفور و به نगौर مواد شیمیایی است که این وجود شما رو ساخت. این مواد کجا بوده؟ یعنی که شما وقتی از مادر متولد شدید مثلا 3 کیلو وزن داشتید. باغش کجا؟ باغش یا توی نبات بوده، یا تو وجود یه حیوان بوده، این همون نشاسته که در دانه‌های نباتی بوده، منتقل شده وجود شما اینقدرن. یا اون ایدروکرگور یا پروتئینی که در بدن حیوان خوده منتقل شده به بدن شما الان این اجزا و ارزاش مستان بنابراین حیوان صورت حیوانیشو از دست میده صورت امسانی اون ماده که در همه مشترکه اون مقدار کردانکسشو نه آسیجن، ایدروژن از که فقط در ذهنمون میتونیم از شکلش رو داشت وروشقن های رو. یم یا یه. و صورت همیشه جایگزین صورت دیگه میشه. یعنی صورت نباتی در چه؟ صورت نباتیش باطل میشه، گوشت میخوریم، علف. صورت نباتیش باطل میشه، صورت حیوانی میگیریم. حتماً چه گویید؟ خوشم میاد. بعد با گوشت نمیواریم تو انبارگاه، حتماً نمیبرید. تیک تیمی معلوم شد باعث نیکویی می‌شود. صورت ایوانیش باعث می‌شه صورت انسانی. بله انسانی به لحاظ چارل کنید خاک می‌شه این صورت انسانی باعث می‌شه صورت خاکی بشه. خاک یعنی شما این صورت رو نمی‌تونید سواب کنید به یکی با مچ‌هایی بده. هر کاری کنید باز یه صورت داره صورت ناچار جای بزند صورت میشه. از تو عیداش مسیح است. اصلاً اتم نه تو این که حافظ میگه که من شراعبه ندارم در جوهر فرد و هیچ تردید ندارم در جوهر فرد برای که دهان تو بر این نطقه استدلال خوبیه، این خیلی معتقد بودن به وجود اتم در قدیم مذهب فلسفی خیلی گرس و محکمی نبوده که همه چیز بکنه البته هیچ ها استدال که کانن شاعرانه است برای که دهان در حال باز میشه بگیرم بنابرای این دو ج ولی میخواد بگه که انقدر این دهان تو کچکه که بهتر این ازدلال برای وجود جز الایت جرزا و جوهر فرد دهان توه باز خوبه برای اینکه نمیدونم مال سهدیس یا مال شاعری دیگری اون میگه دیدم دهنی و رفتم از دیدی که به هیچ مرده بودم اون یه هیچ دیگه راحت بعد از اینم نببت شاعبه در جهره فرق که دهان تو بر این نقطه خوش استدادره اون روشن شد باشه. مجدده دادم که بر ما گذری خواهد کرد نیت خیر دان که مبارک فالیس این نیت خیر مگرم که مبارک پلیس نمیدونم یا زرب وصلله یا اوقل سر زبون من خیلی بیا اغلب وقتی به رفقا بخوام بگم که این کار را حتما بکنیم یا این لط حتما بکنیم با این به جای بیان الکن خودم از این کلام زیبای خاجه استفاده میکنم میگم نیت غیر نکردم که مبارک با اینم تموم شد. میخواستم بگم که اگر دوستانی باشم که داختلب خوندن باشه. و این ابد روسیه یعنی بنده تاکنون ازشون استدعان نکرده باشم به خونه خودشون بگن من کسانی که میدونم که رادسشون به خوونه و میخونن، شما رو ازتونم خواهش که بخونیم بعضی دیگه هم هستن که گفتن که ما نمیخونیم خب ما اونام بخونیم. بعضی دیگه هستن که منتظرن بگیم بخونیم بعد نمی‌گیم، قاصبوسی روسیایی میشه. این هست که اونا رو خودشو ما هم بگن، برای اینکه ما والله هیچ قراری قبلی با دوستان نذاشتیم که بگیم تو بخون تو نمید. همین همینجوری کسی رو بالاخره انتخاب می‌کنیم و چون که الان می‌خوام از آقای استديف خواش بکنم ببینم بعدی چی هست کس نیست که افتاده یه آن ظلف دوتا میست کس نیست که افتاده یه آن ظلف دوتا میست در برخوری نیست که دا میز بلا میست. رو آگه چونین چونین روی تو مگر آنگه بذلف الهی است حقا چنین و چنین در این روی و, و چنین است در این و در این روی مرگز چشم تو ذهی چشم مسکین خبرش از سر و, از سر و در دیده هیا نیست از بحق خدا زورد ما یارا که ما را شب نیست که صد اربده باباد سبا نیست بازای که بیوی تو این شمع در بد حریفان اثر نور و صفا نیست دی, دی نیشد و گفتم سنما اهد به جایا مفتا غلطی خواهد در این عهد وقا نیست تیمار فریبان سبب ذکر جمیل است جانا مگر این در شهر شما نیست چون چشم تو دل میبرد از گوش نشت مشینان دنبار تو بودن تو نه از جانب ما نیست گر پیر مخان مرشد ما شد چه تفاوت در هیچ سری نیست که سریز خدا نیست عاشق چه کندگر نکشد بار ملامت با هیچ دلاورد سپر تیر قضا نیست در سومع زاهد در سومع زاهد و در خلوت صوفی جز گوشه عبروی تو مکراب به دعا نیست ای چند فرو برده به خون دل چند فرو برده به خون دل, دل حافظ فکرت مگر از غیرت قرآن و خدا نیست بند مرسو که یک بیت پیه نسکه نبوده یه زاهد دادم پند ز تو زهی روی هیچ هست خدا شرم ز روی تو هیا نیست قضل در نسکه خانه روی تو دو تا بیت شو در هاشی ها زاهد دادم پند ز روی تو زهی روی هیچ ششد خدا، شرم و تو، حیات نیست ارز کنم که این دوتا نیست که گاهی هست که حالا اینجا اتفاقا نسخه دکران لری هست در رهگوزاری کیست که این دامی بلا نیست ولی در بسیار نسخات هست در رهگوزاری نیست که دامی زبلا زب نیست حالا بعدم خواهیم رسید به اون غزل معروف روشن از پرتو رو جد. نظری نیست که نیست منت من که در از بربسری نیست که نیست این نیست که نیست، یه مبحثی که در معانی بیان بهش میگن حسر حسر یعنی منحصر کردن و این برای تحکیده حسر بر تحکید اگر به بگم بگن که شب شام چی میخوریم؟ بگم مثلا چلوکه باقیم خب طرف که نه آب چلوکه آب نداریم حالا فیلت بگره خورشگاهی میداریم میخوری؟ میگم ولی اما اگه پرسیدن شب چی میخوریم. گفتم هیچ نمی‌خورم مگر چلو کباب. دیگه جای این حرفا نیستی یعنی تأکید شده است که اگه چلو بیار دو تا سهله در ره گذری نیست که دامیز ایز نیست فرقش با اینکه بگیم در هر ره گذر دام بلا هست فرقش اینه که این دوبومی ده درجه از اولی محکم تارید. روشن از پرتبه رویت نظری نیست که نیست یعنی همه نظرها رو هیچ نظری وجود نداره که از برتو رو یه تو این خیلی از اون یکی میگیم راستن دنبال چیزی گشتن نیست که نیست این نیست که نیست یعنی هم نیست ولی اینجا دو تا نیست معنی هست میده من قاو که بر بصری نیست که نیست یعنی هر بصری مننت قاو داره تو رو داره خب کس نیست که افتاده کس نیست که افتاده هم در دو ظرف دوتا نیست میتونی بگی همه کس افتاده هم ظرف دوتا. ولی به این محکمی نمی شود. به این صورت کلام محکمتر شد کس نیست این... کی بود این کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست در رهگذر کیست؟ یا در رهگذری نیست که این دام ولا نیست روی تو مگر آوینه لطف علاقی حقا که چنین دست در این روی ریا نیست ممکنه الان فکر کنید که خب اینو واسه معشوع بشه واسه آدم اینجا محبوبی حالا دوستی، چای مثلا کسی گفته ولی وقتی توجه مکنید یه حدیثی دارید این صورت نلا ها حالات آدما صورت یعنی خداوند آدمی را به صورت خود بیافرید <تصفيق> در صورت عصر در قرآن کریم این حدیث در قرآن کریم هم میگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقوی ما به فطرین صورتی آدمی ذات رو آخری البته بگذاریم که رندایی مثل ناصر خسرو می گفتن که با خدایا اگر ز روی خدایی تینت انسان همه جمیل سرشتی تلعت رومی و چهره هبشی را مایه خوبی چه بود و علت زشتی از چه سعید افتاد و از چه شقی شد زاهد مهراغی و کشی شکنشتی؟ نهمت چرا چراست دریا دریا؟ مهنت مفلس چراست کشی کشی کشی؟ ولی این که میگه که روی تو مگر آگه لطف الهی این اصلا به آدمیزاد خطاب هر آدمیزادی میتونه موضوع این خطاب قرار روی تو اگر آگنه لطف اضافی است حقا که چنین دست درین روی ریا نیست زاهد دهدم پنز روی تو ظهیر روی این همون رویی که الان میگم رو رو بیبی یعنی پر روی و وقاحت زاهد دهدم پنز روی تو ظهیر روی دلیل اینکه این رو پر رویه دنبالش هیچ چش خدا شرم روی تو حیا نیست بیده بعدی که آهای صدق خوندن از بحر خدا ظلف ما یارا. که ما را این دکتر خانلری اینجا هشت نسخه داره فقط یک نسخش به این صورته هفت نسخه دیگه هست از بحر خدا ظلف ما پیراز که ما را شب نیست که صد عربده با باد سباب نیست پیراستن نگوه چیزم عنصریه مثلی که یا ازرقی عربیه یاراستن زو زپیراستان دون دسته کنیم که شاه نارخریو بهام توغان شاه نه محمود بغش محمود انصری میگم ایاز زولف دراز داشت و یه روزی محمود غضب کرد و خودش تاخ شد از زولف ایاز چید که کسش بعدن راحت تو این مینشه صاحب بلند میشد و منتظر می می بود که بزنه سر یکی سر ببره و همه مثل بیت ویلاردجان کنجه آرش که اینجا عرش کسی نگیره فارس خودش کرده اونا. بعد میگه که کی ای به سر زلف بود از کاستن است چه جایی به خم نشستن و خواستن است وقت تر وقت زودن و میخواستن است کاراستن از سرز پیجاستن است که میگه وقت محمود خوش شد و باده خواست و نشستن و الحمدلله ام بلا شد ده. بنده هم ولا از شد برای این روایی رو در سال سفی خونده بودم و تا امروز نخونده بودم حتی یک بار و ارز کنم که از بحر خدا ظرف مفیراد که ما را شب نیست کسد عربده با پاو سبان نیست که بیروی تو ای شم روز در بزم حریفان اثر سر نور نیست و اما این به تیمار غریبان سبب ذکر جمیل است این خیلی بیت زیباست فوق العاده زیباست میگه نوازش کردن غم غریبان خوردن موجب این میشه که یاد خیلی آدم در دنیا بمونه مگر این قاعده در شهر شما وجود نداره تیمار غریبان سبب ذکر جمیل است جان مگر این قاعده در شهر شما نیست دی می ی و گفتم سن ما عهد به جوار گفتا غلطی غلطی یعنی تمون است که الان در افغانستان میان غلط کردن اشتباه کردن و غلط کردن خیلی در این اواخر صورت دشنام به خودش که غلط کردی این به این صورت همچین خیلی غلیظ نبوده غلط کردی یعنی اشتباه کردی الان هم هست در شعر سعدی و حافظ و دیگران هست و همین‌طوری شیوه یه چشمت فری به جنگ داشت ما غلط کردیم و سوله این راشت این اشتباه چون تو دل میبرد از گوش نشینان دنبال تو بودن گناه از جانب ما نیست این مصرهای ما مال شیخ عجل صحبیست دنبال تو بودن گناه از جانب ما نیست عرض کنم که آن صرف که گوگن، با... این به مصرها اولی ها به ضرورت مصرهای کرده آن صرف که گوگن به بالا آمد هنگز قدمی پیش تو رفتن نتواند دنبال تو کنه از جانب ما نیست. با غمزه به بود دل مردم پسی و بعد گرفته دنبال تو از, از خبر قرار و. و خیلی هم زیبا است درست چون چشم تو دل میبرد از گوش نشینان دنبال تو بودن کنه از جانب ما یک فقط فقط نصیب بله بعدم چیزه بعدم نادر نوشخ خلطالیو که از خودش دست نمیداره نوشخ خلطالی همراه بوده و مال سعدی دنبال تو بوده من خودم که قبل از اینکه تاس قازینی رو بخرم یعنی قبل از سال 1220 که خریدم مسخره رو این غذا از سر خسته دنبال تو بودن برای جانمان خاطرشون این رو همراه بوده نیداشید این طونس قازینی که این همسال دستم نبود نیداشید گر پیر مقان مرشد من شد چه تفاوت در هیچ سری نیست که سرلید خدا نیست باز این اشاره هست به یه مطلبی که اگر این مطلب درست باشه در حقیقت پنبه تمام ادیان رو نمیگم ادیان و مذاهب رو اول پنبه تمام روحانی و متولی های امامزاده مذاهب رو میزنه او اینه میگه پر و قلب و نه و قربسون بیرن ناه از دهن پس همی آهای رسیدنه به خدا و تعداد مردم یعنی هر کسی میتونه جداگانه راهی به خدا داشته باشه. چه قبل از اینکه من بیام اینجا با اون دوست میزبان مهربان عزیزم نریمان یالبا همین صحبت بود گفتم این قصه موسا و شبان که ما توجه بهش نکردیم که را ثقب و گفتن و بعد هم فکر نه اخه ما حضرت چه نه تو میگه می که موسا پیغمبر خدا یکی از پنج را پیغمبر قلل از اولین پیغمبر صاحب کتاب چوپونه دید که چوپونه با خدا مثل یه آدم خیدهاتی مثل خودش هرد بودم دید موسا شبانی را به راه تو همین گفته ی خدا و اله تو کجایی تا شدم من چاکرم چارغت دوزم کنم چارنسرم دستکت بوزم به مالم پایکم وقت خواب آید به روبم جایکم گرد تو را بیماری آید به پیش من خار خیش. تو را قمخار باشم همچه خویش بعضی بهتارو تو کتاب کلاسی نزشتم جامت دوزم، هایت کشم شیر پیشت آورم، ای محتشم چه چه؟ بعد میگه نمد بیهوده میگفتان شبان گفت موسا با هستی؟ ای فلان گفت با آن کس که ما را آخری؟ این زمینو چرف از او آمد پدید گفت موسا های؟ خیر شدی خود مسلمان ناب شده کافر شدی درست همین ارتخطایی که میگن بعد مرده از روانالیز میگه این رفت جهنم اون که به لغاولاه الله گفت موسی ها خیر سر شدی خود مسلمان ناب شده کافر شدی گر نبندی این سخن تو حال را آتش آید بسوزد قربت دنیا آتش میدینه هر تو میذری که گفتی يا موسا دهانم دود پس پشیمانی تو جانم سوز سینه را بهت آهی کرد سخت سر نه در دیوان واهی آمد روی موسی از خدا بنده ما را چرا کردید جدا تو برای وحس کردن آمد نی برای فست کردن آمد. برو زود در چون که موسا این اتاب از حق در بیابان از په چوپان ببین آقاوت دریافت او راهو بدید گفت مجدده که دستوری رسید تو مرزای ابتدایی گفتن دستوری رسید دستوری یعنی اجازه. یه شم جازی دوستان دختر رست و وز مستوری کرد شد برای محتسب و کار به دستوری کرد دستوری یعنی اجازه آقلات دریافت او را بدید گفت مجده که دستوری رسید هیچ آداب یا ترتیبی آن چه میخواهد دل تنگ بود اینطوره اگر هرکسی کسی راهی میتونه با چیز داشته باشه چون که با معشوق گشتی هم نشین ترد کن دلالگان را باید از این که معشوق واسه میاره بعدم باید گیر اونجا میشینه وقتی آدم به خدا به معشوق رسید دیگه واسطه احتیاج ندارید تمام کار تصفف اون سر مگوی تصفف که میگن که حسین به منسور حلاجو برد سر دارم این همینه که اون باقی همه که آدم شو این دلتو درست کن درست انسون باش ولی اینطور خیلی مشکل بوده هزار جور وصله ممکن بوده بشه از همین دلیل بزرگترین جریان مبارزه منفی که با نفوذ باطل و نادرست یعنی چیادانه اولیای دین شده بزرگترینش حسب که در تمام عدیان هم هست در بودایی هست در ادیان هندی هست در یهود هست در مسیحیت هست در اسلام هم بالترین جلوش هست و این اصل مطلب اینه که این سلاح ها ادبست این بگیرن کل قضیه اونه ولی نمیشه که این گفت اینه که در تصوف میگن سه مرحله در راه ها شریعت طریقت حقیقت اولی که فقیری میخواد بیاد مشرفی فرروشه میگنه آه تمامه تمام مسائل و دستورات شریعت رو شما مو به مو بایده شد نوازتو مرتب بخونید، اوزت بگیری، حفظاتو بدید، چه بکنی، چه بکنی، چه بکنی؟ تا برای چی اون پیر میدونه که این برای اینه که کسی از اهل شهر انگوشت بر حرف این بابا نظر. این از این نظره، اما به اون آدم میگه آقا اولین قدم از تو اگه این کار حاضر نیستی بکنه این تازه قدم این مقدمه است به تو میگن که دروغ مگو به تو میگن این خمس رو بده بعد که بخواد بیا در طریقت این خمس رو ممس میگه همه پول تو بده بگیم بیرون در راه خدا تو باید بدهی پیرایی گفت کشکول برده گدایی کنه برید گدایی کنی گفت خونه تو آتیش بزنه ما باید اول, اول تو، اون،, اون چه چه گان حاصل بکن تا بعد برسیم باقیش. بعد که شریعت تموم شد خب حالا طریقت اولین قدم طریقت آخرین قدم شریعت تو میای این تو دیگه چیزی جز خدا چه داشته باشه تا دا میرسه به مرحله حقیقت وقتی مرحله حقیقت میرسه درست مثل آدم نیست که وقتی از یه راهی گذشته بود اون راه که دو وجود نداره اون تموم شده رسید جایی و تکلیفش و عذرش اصلا چیه اونطور که نمیشه اون اونایی که نرسیدن گفت یه طلاق بیا مرز ما حسن سعد و وکیل دادگستری میگه شما به یه طفل نابالغ بخواد لذت همخوابی و همآغوشی رو بگین چی میگین آقا بگین شیرین اخیار میکنه قند بگید خوشمزه است میکنه چه میدونم دوست داره مثلا سردالو دوست داره یا توکیو میکنه هر جوری بخوام بگین نمیشه بعد خودش برسه این حالت رو درک بکنه تا بفهمه کسی که میرسه به اون مرحله، این نمیتونه به اونای دیگه که نرسیدن، بگه. چی بگه؟ ایناست که هیچی نمی‌تونه. در صورت، اساس، یعنی هیچ جریانی تا کنون نتونسته در برابر ریا و تری و شیادی روحانی نماها و اندازه تسبب مقابل. و آخرین دستورش همین است که عرض کردن طرق البسول ایدالله و حضرت انت و سلقالایه یک هر کسی در هیچ سری نیست که سر ریز خدا نیست دومی که میگه از صوفی یو من لبست از صوفه علا صفا صوفه که زید که پادشای پشمین پروشه از روی صفا و جعلت دنیا خلفل قفا دنیا رو به پشت سر و آشن ناس علال وفا و ما مردم به وفا زندگی کنه و سلکه طریق المصطفى و راه مصطفى رو بره و الله فکلب الکوفی قیرون الف سوفی سگ کوفی از هزار تو سوفی بیتره اگه این خلاصه کلام و این که میگه پیر مغان مرشد من شد گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت در هیچ سری نیست که سری ریز خدا نیست همینه، یه جای دیگه یه هم خدا حافظ میگه قرارداد مسجد میخانه هم به سال شماست جز این خیال ندارم خدا گوام با یه حدیث چوت حدیث هم نبشه. نیست، سند خیلی قوی هم ندیشه خب شما از صدوس که صوفی آخه خیلی به سلسله سند احادیث هم اون ترتیبی که آخوندا معتقدن معتقد نیستن اینه که بعضی از حدیث های که اخوندا در در سهتش و در سلسل سنتشون رو تردید کردن اونا راحت میارم و به خواهر میبرن و استناد میکنن بجرد ولی هر حال بیرسی برمون مانویسه هایی که اگه ما بخواییم داستان این شبهان مانویسه ها رو بفضیبیم پس اومدن عدیان مخلوق مختلف، چه معنی بارد؟ اونا برای یه مراحلی برای اولا که یایتون باشی که اینجای کلاس مال یه بالا. دیپلومه بالا دارن هر ادامه تو کوچه وازار این این مسائل همون دارشون مطرح این ادیان رو برای این گذاشتن که اون افراد کسانی که راهی و هیچ راهبری و هیچ عقلی که بتونن دستی به نیست که ذابطه و قاعدهی داشته باشن، یکی دوم که ادیان اصلا بد نیست که هیچ ادیان بد نبوده متولیه‌های امامزاده ای ادیان بد خیلی بله دین خودش باید نبیده، الان هم آخون داریم، روحانی داریم که پرشته مجسم اولی کارش که دخالت در این کارو نکنه. آن بابا میخواد رئیس جمهور بشه، میخواد نمیم چیچی میشه، میخواد فرمون بده، میخواد دستور بده، همه اینا این چی... نه چیزی که من گفته باشه، از قدیم و لعجه نوشتن که این آغاز ز آمد میخواد، آقا ریاست قوم چه الله هم اونجا توستم شفتیم هم اونجا شفتی آقا نجفی هم, هم جورده اینا در طول تاریخ بوده نه اینکه حالا یکیش پیدا شده باشه تازه نوبر شو آورده باشه اینا همه بودن و همین تاثیرا هم بودن همین کار رو هم کردن و اینا یه دسته بودن یه دسته دیگری هم بودن که اصلا تو این ها بودن دنبال این حرف ها اصلا نبودن مطلقا کسی کاری نداشتن در تصوف هم همینطوره کسانی که دستگاه دارن و دم دارن و زندان خانقاه دارن و مشرف میکنن مردم رهبری و, و دعایی رحبری هیچ ملونیز پیر باشن حافظ میگه که رد لگران هم دهیم خرابات شادی شیخی که خانقاه ندارد مرشد حقیق. اون آدم است که یکی بهش میگه آقا شما بیا منو رو دستگیری کن من دستستر مردم من, من نمی‌تونم بعد اگر خودش در شما جوهره چیزی دید که قابل تربیت تحصیب باز بدون اینکه بگه من پیرم، من مرشدم، من میخوام از تو دستگیری کنم برو پول برده بیا اینقدر به من بده برو نزد همچین مکن خیلی به صورت حرف عادی که تو نفر میخوام تو مثلا این کارو رو بکنی باید شما تو دل دلی بینید که هیچ جور از حرف این نمیتونیز چشم رو اما این مراحل دیگه است اگه ادیان مختلف اگر را یکی است حالا اینا, اینا رو بعضی از خدا پرسینت بس اما حالا که از من میپرسید بنده باید جواب سرهم کنم بدم گفتن که مردم روز به روز رو به تکامل میرن بنابراین ادیان هم هر روزی به مقتضای اون اجتماع اون روزگار خودشون چیز میشه اگر از نظر علمی تاریخ ادیان هم بپرسید ادیان در میان اقوام مختلف به وجود میان و اون اقوام سلیقه ها و سنت ها و قوائد و تحقیقات مختلف دارن به علاوه خدا رحمت کنه مرحوم و استاد منم نور به قبرش بباره واقعا میفرموند که اگر خیلی خوب شد که خداوند تبارک و تعالی این پیغمبرا رو به مرور فرستا و الا اگر دوسته تاشون با هم آمده بودن ایش مرون نبوده ما چیه <سکت> <س techniques> ده دة بله، بله امن علیه ظاهر قضیه که از دو طرف ظلمون یعنی آرایش گیسو این که از دو طرف می باختن می مونده ظلم بعد از حافظم بسیار به کاروردن فروزی میگه که کردی سیاه ظلف دوتا را که در قمت مویم سپید سازی پشتم دوتا کنیم اون چیزی که خیلی هم خوندنش شجریان هم خونده دیگر اونم خوندن چیه افرش بکش آن خوش آن که حلقه های سر ظلف ها ها با کنیم دیوانگاه ها و را رها کنیم کار جنون ما به تماشا کشیده است. یعنی تو هم بیا که تماشای ما کنید رسوای آلمی شدم از شور آشق نه اون که ماله درستم کدا نخواست رسوا کنم تو را عرض کنم که تا کی به انتظار قیامت توان میشه برخی تا ازار قیامت بخواه کنید برخیز تا ازار قیامت بخواه کنید تا کردی سیاه که در غمت رویم سپید مویم سپید سازی و پشتم تا. وا خوب از بخونه آقای دوستانی لطفا مردم دیده ما جز بر افتاده ما جز نیست دل سرگشته ما غیر تو را حاضر روز احرام طواف حرم از گرچه از فونه دریش یعنی ظاهر طاهر اگه ظاهر نموشته غلط قطعاً. بله دو تا نوسته این دناسه دو خوانلری در 6 تنه اومده دو تاش ظاهر نیست غلط. طاهر پرسی باشه خداش. بسته دام قفس با چمور بچی. طائر صدره اگر در طلبات طاهر نیست. او مفرس اگر قلب دلت کرد نساب مکنش ای، که باز تنادر روان او قائلت گلات گلات یک نوسته نوسته غزنی قلب دلش توزی میدم ما گلات درست بافتن با، با، با. او که با دست بدان سر بلندش برسد هر که را در طلن در تمثه او قائل از روان بخشی ایستاد نزانان چی شد دم از روان بخشی ایسا نظرم پیش تو دم داند در روح و شد چو لبت نیست من که در آتش سودای تو آبی نکشم سی توان گفت که بردا داغ دلم بر داغ داغ دلم روز اول که سر زرفتو دیدم گفتم که پریشانی این سلسله را او نیست سر پیبنده تو تنها ندلی آخر آن کش آن کش آن کش سر پیبنده تو در خاطر نیست فکش می این مصرهای دو باز با کن است. کش آن کش سر در خاطر نیست ما عرض که باز میبینید اینجا هست. مردم دیده ما جز به رو خط نیست این تک دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست باز, باز حسر این بیت دوم شاهکار هنر واز عشقم احرام توافت حرامت میبندرد چه از خون دلشیش دم تا خیلی احرام در دو مورد احرام داریم احرام اون حالت ایست وقتی کسی در اون حالت بارد باشه بعضی کارها به اون حرام یکی در نماز در نماز یه تکبیری هست الله های بریه از روی این تکبیر ات الاحرام که نماز با اون بعد از از آن و اقامه از این نیت کردن بعد از نیگه نیگه تو دل میکنه البته دلش میگه که چاراکت نماز دول بجام یرم فلان بعد میگه الله اکبر این وارد نماز میشه این الله اکبرش میگه تکبیرت تکبیر اطول در این حال نماز گذار حق نداره غیر از کلام خدا و قرآن چیزی به زبون بیاره حق نداره روشو به این طرف اون طرف بکن و غیر از قبله حق نداره مدتی ماکس کنه حق نداره همه کار جز این که این و این نیایش و این نماز رو به اون صورت تمام بده تا سلام وقتی سلام داد از حال احرام بیرون بیا باید هر صدن برش جایزه و از سایره مفتیشه یکی دوم در حج در حج خیلی عملیات حرام زیادتر میشه در حج، در شش نقطه هست در اطراف مکه، تقریباً در 6 کلومتری مکه یعنی روش میگن میغاد حال احمد هم کتابی نمشه به نام حسید در میغاد بحثه به که از شمال بیاد، از, از شهر بیاید، از غرب به مکه در دو فرسخی شهر و جاهای هم تو اونجا با میستن و لباس احرام میپوشن یعنی لباسشون در میرن، لباس احرام باید ندوده باشه مال مردا رو یاد، دو فقط با مال زنها به نظرم ستیکه هست که تو من زن نبودن خبر ندارم، مال مردا رو میگونن که دو هست بنده به عمره رفتم. اونه خدا رو زیارت ده ولی حاجی خوب از خدا برگشتگان را تا چندان ساعت نیز کار ما مشکل روبرده از با خدا برگشته. از هست که باید دو تا، دو برای مردات دو تا پارچل یکی با لاطنه یکی هم از کمر پایینه میکنش اونهای باید دوخته نباشه نه دوخته باشه بعد میرن وقتی که در حج وارد میشن بسیار کار رو نباید بکن. یکی این که عطر مثلا هست سرشون رو کتاه نکنه. هیچ حیوانی رو نکشن حتی اگه یه اینجا نشه هست بزنن بره نگستید نکشنید اینجا هر کدوم این اعمال رو که بکنن بعد یک دوستان اوگانید هماغوشی با زنشون نداشت روشن زن مجاز آدم به خونش حرام میشه تا وقتی از احرام در یعنی مراسم هج هماغوشی اینو بهش میگن احرام و همینطور هست دو سه شب، دو سه شبان روز ادامه داره دیگه مثلا در حال احرام هش حرف زدن اشکال نداره غذا خوردن اشکال نداره در حالی که در نماز هیچ کدوم این کارها مجاز داره. و دو، دو، سه روز مراسم رو انجام میدن واسه که تمام شد و رفتن و رم یه جمعه کردن و در منا و عرفات و همه میان آخرین کار تقصیره تقصیر یعنی کتا کردن میدون که معمولا حاجیایی که اول بار کنیدن هاید سرشون میترشن اصلا و حاجیایی که چند بار رفتن یه شروع از خوشونو میزنن تقصیر یعنی کتا کردن مویه بر اینکه یعنی از سال چون کوتاه کردن ما چون که عرض کردم یک روستان قربانی دید هم یک جا بیشتر نیست اون چه در اسلام بهش میگن حرم چرم خانه کعبه پخشون